بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بنهله الالعظيم مثلا الله هنا سيدنا محمد الله اكبر محمد اللهم ندعو اهل بيته الطيبين الطاهرين مخوات المهديين المنتجبين سیما بقییت الله فِي السماوات بنا رزین اوزو بالله بلشیطان بل رجیم فاتقو الله بلا تکونو لنعمه عَلَيْكُمْ از دادن ولا لفضلهی عندکم حسادا ولا الَّذِينَ لعدئیا الَّذین شربتم بسفکم کدرهم و مرزهم توفیق بسیار است که بحمدالله در این ایام میهمان خانه گسترده سخنان حکیمانه و الهی امیر ملک کلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام و و در نحج البلاقی حضرت به گلگشت مشبولیم و بهره میبریم آنچه چه بازglu می شود خطبه قاصعه امیرالمؤمنین و قسمتی است که امام بعد از آنکه اشاره می به مشکلاتی که مستقیما شیطان برای انسانها ایجاد می کند در این قسمت از کلام به مشکلات غیر مستقیم اشاره می کند یک بار سخن در نفس و نزگ و تحریکات وسوسه انگیز شیطان مستقیما در قلب و جان انسان هاست اما در اینجا و این بار سخن امام در آثار و اثرپذیری انسان از مظاهر برونی شیطان یعنی تأثیر غیر مستقیم توسط شیطان زدگان شیطان سفتان در وجود آدمیان است پس منابر گاه تأثیر تأثیر مستقیم است گاه غیر مستقیم است این مرحله را امام بازگو می فرماین و متذکر می شن. فرمودند که فتق الله مراقب باشید خدای را ارتباطتون رو حفظ کنید و از حدود الهی و نا تکن لنعمهی علیکم از دادن. توضیح داده شد این قسمت ها خدمت دوستان عزیز که فرمودند مبادا جوری عمل کنید که نعمت های الهی را زد. و علیه خودتون به کار ببندید و استفاده کنید و لا علیکم از دادا و لا اندکم حسادا میتوانید شما جوری نعمت رو استفاده کنید که به زیان شما باشد این بخش اول و برای فضل خداوند در نزد خودتون حساد و حاسد نباشید شما اجازه بفهموید که من این رو یک بار دیگر به دو بیان توضیح بدم خدمت دوستان سریع به ادامه بحثمون رو پیگیری کنیم ولا لا تکونو لنعمهی علیکم ازدادا این تعبیر رو ما در قرآن زیاد دیدیم آشناست برای دوستان عزیز ولا لا انفسکم مسلمانان خودتون رو لمز نکنید تنه عیب از خودتون نکنید کمند انسان هایی که از نفس خودشون عیب جویی کنند بلکه دیگران متمه نظرند یعنی انسان به تعن و عیب دیگران میپردازد و ویلون لکل همزتن لومزه مگر غیر از این است؟ اما قرآن فهمد ولاتن زو انفسکم یعنی چه؟ از تعبیر آن که به دیگران نپردازید و عیبجوعی دیگران نکنید خداوند چنین تعبیر میفهمد یعنی خود انسان رو جای دیگران دیگران جای خود گذارده میشود با این منطق که در نگاه مسلمانی جامعه اسلامی پیکر است یعنی <coughs> <يعني krada> <ed> انم المسلمون به منزلت الجسد ال واحد. همان سخن نبی مکرم است که مسلمانان یه پیکرند حالا شیخ در گلستان این رو گسترش داد یعنی نبی مکرم فرموندن مؤمنان و مسلمانان شیخ میگوید بنی آدم ازایی یک پی کرند. این ترجمه حدیث نیست ترجمه حدیث اینه که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز با توجه به اینکه چنین نگاهی وجود دارد اگر کسی ای به دیگران بجوید در حقیقت ای به خود جسته است. اینجا هم قصه همینه یعنی با این شیوه نگاه کنیم اول اگر در جامعه زو نعمتی دیده می شود و خداوند بر مردم نعمتی هرزانی کرده است جوری عمل نکنید که این های اجتماعی بلا ممکنه نعمت بر شما نباشد به زیان شما و جامعه طی شود و تبدیل شود این یه بیان ادامه بحث را اگر همینطور بگیم باز می شود ولی لفضله عندکم هسادا اگر میبینید خداوند فضلی بر کسی در جامعه کرده است گویا بر شماست شما خوشحال از این باشید مسرور از این باشید که در جامعه توسعه میبینید در جامعه استعدادهای عالی میبینید، رشد میبینید به کمال و به بار نشستن انسانها رو مشاهده میکنید. این موجب خوشحالی شماست چون هنگامی که جامعه چنین سرمایه ها و استعدادها و نخبگانی دارد سود عائد اون رو همه اجتماع میبرند شما هم برای اون رو میبرید و حسادت مکنید. این یک بیان. اما بیان دوم نه مستقیمن خود انسان یعنی این یه استفاده است منافاتی نداره استفاده دوم این که بلا تکنو لنعمهی علیکم از دادا نعمتی که خداوند به خودتون داده است کاری نکنید که ضد شما باشن دیروز گفتیم کمترین چیزی که خداوند از ما میخواهد آن است که با نعمت‌های الهی ستیزه یه با حضرت باری تالا نکنیم مطل حدیث از وجود نازنین حمیر المؤمنین. انسان با داده های الهی گاه آنگونه عمل می کند که فردای قیامت چیزی رو که باید پاسخ بدهد فقط همین هاست یعنی ولت سوالون نیوم ازن انن نیم همین هاست که باد فردا پاسخش رو بدهد و گریبان آدمی رو تک تک این نعمت‌ها در قیامت می گیرد. قسم دوم ولاد و نباشید وَلَا لَفَضْلِهِ عَنْدَكَمْ حُسَادَ وَبَرْفَضْلِ خُدَاونَدْ به خودتون حسادت مورزید حالا ممکنه بگیم مگه ممکنه کسی به خودش حسادت بورزه به فضل و فزونی خدا بر خودش حسادت بورزد اینجا مراد نتیجه حسد است اشاره کردیم خدمت دوستان هنگامی که حسد میجوشد و دیگه اون قلیان میکند در وجود انسان تمنی زوال نعمن لبهر آدمی دوست دارد آرزو می کند نعمت از کف دیگران به در رود این میشه حسد و چنین کسی حاسد است و من شر را حاسد حسد این که امام می فهمد و لا و نباشید برای فضل خداوند بر خودتون حساد همین معنا رو دارد یعنی به لحاظ نتیجه است یعنی جوری عمل نکنید که اگر خداوند فضلی بر شما و فزونی بر شما داد حاسدانه با آن عمل کرده باشید و بنگرید که زوال نعمت رو خودتون مشاهده کنید زوال فضل رو مشاهده کنید پس مراد از حسد اگر حسد به نفس باشه نتیجه ی حسد مهم است که برون رفت نعمت و از رفتن نعمت از آدمی است. ارمود بانو لفضل هي عندكم ولا تطيعوا الادعيا این قسمت رو هم اشاره کردیم مون دیگه و اطاعت نکنید ادعیا را ادعیا جمع دعی دعی آن کسی که حسب و نسب او معلوم نیست به همین خاطر دعی به گان پست و دون گفته می شود استشهاد سخن سگی و رو پایان عرائض خواندیم ولا تطيعوا الادعيا اطاعت نکنید فرومایگان پست رو در جامعه که اینها اتباع شیطانند عناصر شیطانند الذین شربتم ب صفکم كدرهم که نوشیدید با صفای خودتون کدورت ایشان رو باز هم من همونطور که دیروز اشاره کردم عرض میکنم این قسم از سخنان امام و این مطالبی که اینجا دارن هزت می در اوج یعنی قله بالای فساحت و بلاقت رو کرده است نمیشه بالاتر از این سخن گفت یعنی واقعا فنق کنامل مخلوق هرچند دون کنامل خالق هرچند سخن امام دون سخن ذات باری تعالی اما فراتر از سخن مخلوق است در زیبایی ارجمندی و فخامت لفظی و معنایی فرمود اطاعت کسانی رو نکنید که شربتم به صفكم شما در عین صفا و صافی خودتون و پالودگی جام خودتون کدر اونها رو ریختید در جامعتون و نمینوشید یعنی شما خداوند این صفای وجود رو به شما داده است صافی فکر رو بهتون داده است اما وقتی در پی این شیطان صفتان و شیطان زدگان رو می گیرید و اطاعت و می کنید این صافی وجودتون تبدیل به چه می شود؟ به کدورت، به تیرگی افکار شایسته و پاکیزه ذهنتون جایی آن رو چه میگیرد؟ ظلمتها و تیرگی کدورت ها و تیرگی ها در جان و فکر و ذهنتون آین و خلطتون به صحت کن مرزه هم اطاعتون کسانی نکنید که شما خلط میکنید، کنید ترکیب می کنید مرز اونها را با صحت خودتون خداوند صحت رو به شما داد مراده امام در اینجا صحت جسم نیست صحت جان و روح استهزار دارید هرچند متاسفانه در عرف جامعه بشری عزیزان معل عصف, عصف، بها و ارجی که به جسم و سلامت جسم داده می شود به سلامت جان و روح داده نمیشه. شما در و دیوار این شهر اسفحان رو نگاه می کنید ساختمان های بلند تابله ها رو می بینید از بالا تا پایین متخصص فنان متخصص فلان و مردمان هم در به در این کوب اون کو می گردن در پی این جماعت شما چند تا ساختمان و چند تا میبینید که از بادا تا با این متخصصان جان باشند و مردم برای اون جهت مراجعه کنند که روحشون رو درمان کنند چقدر میبینیم چقدر میدمند دنبالش والدین چقدر دغدغه دارن برای جسات فرزندانشون یک کم گوشه چشمش میزنه یک کم رنگش فرق کرده است دست و پای این پدر مادر بم میشه به صد جا میزنه که بتونه درمان کنند اما وقتی انحرافات اخلاقی و فکری دیگه میشه تو چی چقدر حساسیت داریم چقدر به فکر درمانشون میفتیم این خلاف اصلیست که انبیان الهی عمل می یا یه ناس انتمول مرزا مردم بدونید مشکل دارید بدونید چما مرز انهرافه یعنی اعت... از اعتدال خارج شدن نام این مرض است وقتی خورشید گرفتگی داره میگن شمسون مریزه. وقتی روح انسان کار خودش نکند جان انسان در مسیر خودش نباشد صفات انسانی و اخلاقی در مجرای خود جاری نباشد نامین مرض از خروج از اعتدال یا یه ناس انتم المرزا و نحن العتبا فرمود نبی مکرم مردم شما بیماری دارید، اما ما طبیب شما هستیم طبیبان خداییم نیا موخت زستاد شناسیم همه درد و بدانیم دبارا میازهار از این بیش خدا را و دل ما را به پرهیزه دل درویش خدا را اون اشعار زیبای شاعر خراسان دیار خراسان تا به اینجا میرسد که طبیبان خدا این نیاموخت ز استاد شناسیم همه و بدانیم دبارا امام فرمود خداوند صحت بهتون داده است اما با اطاعت از شیطان زدگان صحتتون تبدیل به چی میشه؟ سوء میشه، تبدیل به انحراف میشه. مراقب باشید اطاعت نکنید. و ادخنتم فی حقكم باطلهم اطاعت نکنید. از اون دونمایگان و فرو فرومایگانی که با اطاعت اونها اون حقی که خداوند و قول جا الحق براتون مشخص کرده است با باطل متاسفانه ترکیب می شود و باطل داخل حق شما می شود همیشه تو از یه چیزی می ترسه عزیزان جایی که باطل می آید آشکار و خودشونشان می دهد باکی نیست چون دوامی نمی آورد. چون باطل ماهیتن دوام نداره للحق دوله و للباطل جوله باطل یه جولان میکنه میره شما چقدر مکتب و اسم و فکر و عقیده و مرام و در طول تاریخ هزاران هزار افکار التقاطی و انحرافی دیدید گرفتن محف شدن باقی نموندند هنگامی که باطل محز است مشکلی نیست انگامی که حق روشن است به تمام مشکلی نیست اما تمام درد جاییست که حق با باطل منزوج میشه اینجا تمیز و تشخیصش مشکله اینجا جاییست که انحراف و لغزش فراوان پیش میادین رو بارها میرون مومنین تو نهجر بلاقه ابراز نگرانی میکند از چنین سحنهایی مراقب باشید خداوند به شما بهره حق داده است مسیر حق رو براتون روشن کرده است لده اینا و کتاب و نینتق و بالحق بالحق هم و بالحق نزل حق رو براتون است ارسله بالهدا و دین الحق برای شما آمده است این وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی <الحس> <مرأس> اما مراقب باشید که این باطل می آید. و داخل در حق میشه روی حق رو میگیرد ممزوج به حق میشه و شما رو از حقانیت منصرفتون میکند مراقب باشید این کار شیطان صفتان است ولا لا تو که اول چه و خلتتون به صحت کن هم و ادخلتون فی حق کن باطله هم و هم اساس الفسوق خیلی جملات امام تکندند است عزیزان این کسانی که اطباء شیطانند و اولیان شیطانند و شیطان صفطان و شیطان زدگان و ابناؤل حمیه‌اند، اونها که در تعصبات جاهلیت و کبر شیطانی فرو رفته‌اند، اینها هم اساس الفسوق اینها پایه اساس زیربنای ساختمان رو میگویند، اینها اساس فسوقند. یعنی اینها که فسق از اینها در جامعه شروع میشه. انحرافات از اینها در جامعه شروع میشه. تردیدی نداریم که جامعه بشری به دو گروه تقسیم می شود بله بعضی از جامعه شناسان معتقدند به سه تا شادم هرشون درست باشه میگن جامعه بشری رو میتونید به سه دسته تقسیم کنید منهای اینکه عدداشون با هم چه نسبتی داشته باشه انسان ها گاه پایه اند گاه پیروند یا پایه یا پیرو را تابع یعنی ببینید یا جلودار و بیانی ارز کنیم گاه در هر عصر و زمانی یه انسان هایی پیش میان که ماورای این دو هند. یعنی گاه در اجتماع بشری شما پدیده میبینید گاه پایه میبینید گاه پیرو میبینید. پدیده اون کسانی یعنی هم که هر سده ممکنه خورشید به کنار برود بالاخره ابر به کنار بره خورشید به تا به کسی در جامعه بیاید که سال‌ها در کعب و بدخانه می نالت سال‌ها در کعب و بدخانه می نالت حیات تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون گاه یه چنین اتفاقاتی برای بشریت می و یه محبت الهین چنینی نصیب انسانها می شه. این سووا جدا غیر از اونها انسان ها رو در شکل بدوی که نگاه می یا یا جلودارن یا پیروون از این خارج نیست. چه در خیر؟ چه در شهر؟ در خیر میبینید گروهی جلودارن و مردمان در پی اینها فکر اینها الگوی اینها رفتار اینها تفکراتشون رو میگیرند مشومرانشون رو بر اساس اون قرار میدن در مسیر خیر که خدا کند که چنین باشد. درباب شر هم همینطور عزیزان یعنی یه گروهی هم که اینها جلودار شر هم در جامعه اینها حرکت میکنن به دنبال اون مردم این جماعت رو میگیرن اطباع کن لدائق یا میلون معکل لری این هم دنبال اینها حرکت میکنن میگیرن و میرن به تحبیر امیرون مومد امام میفرمن که اونها که شیطان صفتان و اطباع شیطانن میشن جلودار فسق در جامعه اینها ایجاد میکنن تأسیس میکنن ختم می‌دن، تفکرات شیطانی و القائات شیطانی رو در جامعه می‌پراکنند و مردم رو پی خودشون می‌گیرن. هم مساس الفسوق و احلاس و احلاس جمع حلس. حلس به معنای زیرانداز، پلاس. در فارسی بگیم پلاس، زیرانداز دقیق‌تر اگر بگوییم با این تعبیر حضرت بستر، اونی که روش می باید این بستر سازی بشه هم رخت خواب رو بسترن و احلاس الحقوق اینها بستر حقوق اند حقوق یعنی چه از ماده عقا بعض جایی که ذهنتون تون زود میآیند عقوق والدینه آب والدین عقا آق در لغت یعنی چی ای ظلمه عق یعنی ظالم حقوق والدین چیزی پیچیده این نیست یعنی ظلم پدر و مادرش آن کسی که به عنوان ظالم پدر و مادر شناخته می شود لایشان مرعاهتا جنه بوی بهشت به مشام او نمی خورد از اکبر الکبائر درست پس عقل به معنای ظلم است هر کجا که باشد حالا ممکنه عکسش باشه ممکنه والدین نسبت به فرزندان حقوق داشته باشند یعنی ممکنه پدر و مادر ظلم به فرزندشان بکنن یه طرف نیست ماجرا فرمود اینها احلاس اقوقند اینها بستر ظلم را در جامعه فراهم میکنند و انسانها را به تعدی و تجاوز وادار میکنند حالا اینجا دیگه پرده از این گروه و ارتباط شیطان با این گروه برمیداره اتخذ هم ابلیس و متا یا زلابن. ابلیس اینها رو به عنوان مرکب زلالت خودش انتخاب میکند بار گمراهی رو بر دوش اینها میگذارد اینها رو پی میکند در میان جامعه و مردم در پس اینها حرکت میکنند و به زلالت های شیطانی میل میشوند و جندن بهمی رسول علی الناس اینها میشن جند و سپاه شیطان که شیطان به سبب ایشان حمله بر جامعه میکند یسون علی الناس و تراجمتن سنت هم. اینها میشن تراجمی که شیطان بر زبانیشان سخن میگوید یعنی این اینها میشن چی سخنگوی حکومت شیطان میشن بلنگوی تبلیغاتی شیطان خیلی زیبا میگادم ایرون مومنین شیطان خواسته های خودش رو به زبان اینها ترجمه میکنه به دیگران منتقل میکند اینها میشن زبان و سخنگوی شیکان و تراجعه متنیند و علا السنته خب عزیزان اینها کاملا برای ما ملموسه. اجازه بدید من فقط یه جمله بگم بعد امق فاجعه رو بخونیم امق فاجعه رو از زبان امام بشنمیم یعنی شما در طول کرهی خاک پنج وارده رو نگاه کنید الان فرماشات امیر المؤمنین رو دقیقا مشاهده کنید و ببینید تمام این دستگاه های تبلیغاتی دنیا رو تمام این امکاناتی که امروز به برکت دانشی که خداوند به بشر و خلاقیتی که به ذهن انسان داده است چگونه استفاده میشه؟ آیا سوال واقعا کاربری خیلی از این امکاناتی که الان در خدمت بشره به سوی رحمان است یا به سوی شیطان است؟ یعنی واقعا کاربری کدوم قاللب انسان ها چطور بیشتر استفاده می کنند از امکاناتی که خداوند؟ در اختیارشون قرار داده است. که اینا در ماهیت این وجود بوده است ذهن و استعداد رو هم خدا به این مغز داده انسان تونسته این توانمندی‌ها ها و ظرفیت های طبیعی آفرینش رو برون بکشد از دل اون امکانات مثلا فرض میفرید با خبراتی استفاده کنه. از دل اون امکانات صوتی تصویری مالتیمیدی استفاده کنه مثلا اینها رو بکشه بیرون به استفاده کنه اما واقعا شما نگاه کنی چه خبره با کمال پوزش حرز می‌کنم. از خااننم ها و آیان فکر میکنید الان تجارت اول دنیا کدوم تجارت در بین انسان ها گام کنید نفته؟ بالاترین تجارت دنیا امروز متاسصفانه است. نان درآورترین تجارت دنیاست امروز از شید ها و یرم رو بلفهشاولمان الان؟ سرماهی که در سکس مصرف میشه، در سکشمال مصرف میشه، این کجا؟ و اونی که داره در طاعت الهی صرف میشه، کجا عزیزان من؟ خوب، شیطان از خود انسانها یارگیری کرده است. اینها چهره ها اشخاص و و کارها که انجام میدن. نمیخوام من یک سر و یک دست نمیگم بیان مشخص بلاخره آنچه که است و استفاده است که میتواند در خدمت انسان باشه در جای خودش یعنی حضرت علی میتوانید در همین فضای مجازی بهترین و آلیترین و نابترین استفاده ها رو بفرمایید شما یه سایت رو باز میکنید میبینید نمیدانم مجموعه تفاسیر فرض بفهمید آقای انصاری رو میبینید یه سایت رو باز میکنید مثلا تفسیر قرآن مفصل عالی مقام رو می‌بینید حالا یه مختصری حروف رو عوض میکنید سایت بغالش میبینید نگاه میکنید موازی اون رو نگاه میکنید موازی اون رو نگاه می‌کنید عجیب روزگاری داریم عزیزان عجیب روزگاری داریم واقعاً این امکان خیر و این امکان شر چقدر پهلو به پحلو دارن حرکت می کنند برای انسان ها و چقدر معنی دارست سخنان تکاندهنده امیر المومنین در اینجا در میان خود انسان ها تفکرات شیطانی آنچنان حاکم می شود که اینها میشن اساس شند اصانس الفسوق احلاس العقوق هم ابلیس و متایازلال و جندن بهم هم یسول علال ناس به سقیر و کبیر رحم نمیکنن. به پیر و جوان رحم نمیشه اگر مراقب نباشد و اگر نداند که داره رو به کجا میرود و چه میکند فرقی هم نمی کند. جندن به هم یسول الناس از جهت فکری و اعتقادی از جهت اخلاقی از جهت اقتصادی تمام این حوزه ها کاملا فعال و جدی بعد عرض کردم فاجعه اینجاست شیطان بر زبان خود انسان ها من دیگه ادب می و هیا میکنم، باز نمی کنم مطلب رو بیش از این تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل عزیز من بزرگ عمار. اما جان مطلب اینجاست که امام می استراقند استراغند هم الله اکبر کاری که این اطباع شیطان می به تعلیم شیطان می دونید چیه استراغند اقوله هم استراغ یعنی چی؟ گاش ندید استراغ سهم نشنیدید یعنی یه جوری مثلا یه مطلبی رو چیز رو بگیریم استراق به معنای رو بودن و گرفتن به لطافت زرافت و پنهانی است استراغن اقول هم این اتباع شیطان اول کاری که میکنن کنند چی رو می گیرند؟ عقل و اندیشه رو میگیرند از انسان ها یعنی کاری میکنن که اقول ما عقل این جوان من کارایی نداشته باشه کاری می کنند که هواها و امیال حاکم بر جان و وجود می شود عقول و اندیشه ها عقل این که حجت خداوند در وجود انسان است به حاشیه میرود و رو به عقل ناسیر و هوا امیر عقل میشه اسیر وجود و هوا میشه چی امیر وجود شاک. اقول عقول گرفته میشه سؤال میکنی عزیز من جان من شما به چه دلیل این رفتار رو داری انجام میدی؟ یعنی واقعا میخند میگه دلم میخواد دلم میخواد یعنی چی؟ یعنی هیچ منطقی عقلی در اینجا وجود ند یعنی تموم شد یعنی عقل خاموش شد مثل الانقل که مثل فی وسط البیت در وسط خانه وجود و جان ما مثال اقل مانند این چراغ است مانند مصباح به تعبیر منصوم اگر چراغ وسط خانه خاموش شد ظلمت خانه وجود من و تو رو از عزیز من جان برادر بخواهر توجه دارید وقتی اقل رفت از وجود ما تمامه اولین چیزی رو که شیطان هدف قرار میده اقل است. میخواد اقل ما را بگیره با تمام ابزارها، با تمام امکانات با تمام دار و دسته با تمام جذبه ها با تمام جلبه ها فلا تقرن نکم الهیات الدنیا ولا یقرن نکم بالله القرور عجیبه خیلی جازبه داره قرآن تصریح میکنه و تصریح میکنه که بله هست هیچ چاره هم نیست این جذبه ها این زیبایی ها جنسی اون نمیدانم اقتصادی اون اخلاقی اون این فریب می اینا فریبنده است. اینها در در حدیست که من لم یو حییه چور رمی و از هارو و المزامیر و اوتارو و فاسد و المزاج یحتاج و به تعبیره و حکما شاید بو علی. کسی که این زیبایی های اینده میدانم و این چی و چی و چی و فلان اینها این تکانش ندهد این روان پریش با باید روانش درمان کند اینها جذابیت داره فرو میره در وجود ما چه قوتی داشته باشیم ما با چه چیزی ببینیم که خیلی از چیزها در نظرمون جلوه جلو نکند و جذابیت نداشته باشیم شما تا جاذبه برتر رو نبینید در جاذبه ضعیفتر چی میشید گرفتار میششه اززیها بعد ما یه جازبه بالاتر ببینیم آن خیالاتی که دام و لیاست عکس محرویان بستان خداست دلی که هوره به هشتی رو بود و یقما کرد چه التفاوت کند بر بطان یقمایی اونی که عزخایی میکنم میخوام ملموسش کنم میگم اونی که زیبارو ندیده به چهار تا خطخال که میبیند دلش میلرزه اما اونی که زیبارو دیده به معنای واقعی وقتی نگاه میکند میخندد هیچ؟ شکلی نیست این که شمایه نیست این که حتی خوادی نیست اما اگر دید اون جمال را و اون زیبایی رو دیگه اینا براش جلوه نداره شیطان می آید شیطان سفتان می آن تو جازبه های ابتدایی سطحی کار می کنن. چشم متوقف میشه عقل از کارایی میفته اون جاذبه های برتر اون حوزه های فراتر رو دیگه به پای تعقل آدمی نمیرود نمیبیند لذتش نمیبیند لذا مینوشد چون لذت این شراب رو میبینه چون لذت این ماده مخدر رو میبیند تادمی از هوشیاری وارهند تا دمی از هوشیاری واره ننگ خمر و زمر بر می نهند یعنی این رو دیده است ای همه هستی چه می ادم اگر کسی کارش رسید بانجام که تو خود خوبی و کان هر خوشی تو چرا خود منت باده کشید باده از ما مست شد نیمه از او قالب از ما هست شد نیمه از او اگر کسی وجود انسان رو لذت های انسان رو حقایق حالی چه خدا در این وجود قرار داده است بداند، بفهمد، بچشد این کجا اعتنام می کند به این مسائل پس ددون لازمه این چیه؟ نیروی عقل تعقل شیطان چیزی رو که هدف می ده عقل از عزیزان رو عقل فرمود استراغن لعقول کن کار میکنن اطبای شیطان که عقل شما را به زیر بکشن برو بایین تحتیل کنن استراغن لعقول کن و دخولن فی اویون ببینید یک جمله ساده ای رو مثلا شما میشن یا دم قنیمت نشنیدید فراغان میشنه دم قنیمت یعنی دقیقا تیر رو به قلب عقل زدن دم قنیمت از ویژگی‌های های اقل اقبت نگریست یعنی تعقل خضا می کند که شما اگر می‌خوان پاتونو رو بگذارید نگاه کنید کجا دارید میگگذارید. عقل مدبره یعنی اون سو را این سو را میگرد بعد به شما اجازه سخن گفتن میده. عقل به شما میگد وقا می‌خواد شما این حرف رو جواب بددید یه تأمل بکن ببین پیامد این حرف چی علان اگر بگی؟ چه نتیجه‌ای براد برات داره؟ چه پس لرزه‌ای داره؟ به قول چه سایت داره برات؟ یه تحمل میکنیم میگه نمیگم عقل اجازه سخن گفته هم نمیده چرا چون تدبیر امر میکنه اما وقتی انسان عقل نداره تدبیرم نداره هر کاری را انجام میدهد با کیم از پیامت هاش نداره هرچی هست فرمود استراغند عقولهم و دخولا فی عیونکم خب حالا ببینید کمک بگیرم از قران عقل عزیزان دستگاه تفکر ما قالب فکری ما در بنوعی فضای تعقل شکل می گیرد اما مایه هایی که عقل میگیره این به اصطلاح این دوستان کامپیوتری ما این دیتا هایی که شما میدید به سی پیو به پردازش کرد پردازش می کند از اطلاعات ورودی میدید شما تبیل میکنه تحلیل میکنه به شما تحلیل می اطلاعات را بله ان سمعه والبصر والفؤاد كله الاء كاننهم مسؤولا اطلاعات شما از چی میگیرید چشم گوش این اطلاعات رو دریافتا رو میگیرید میدید به فؤاد فؤاد چیه بارها اینو در تفسیر شنیدی درس کردیم فؤاد از تفعد میاد تفعد به معنای سوختن پختن پختن به این سیخایی که کباب رو میچرخانند کباب پخته نگردد مگر به این سیخایی که میچرخانند رو آتش کباب رو میگن مفعده مفعده فعاد یعنی کانون آتش یعنی جایی که پخت و پز میشه یعنی جایی که میپزه این نسم اول بسر شنیدنی ها و دیدنی هاتون رو میگیرید میدید به فعادتون فعاد و جانتون چه میکنه تبخش میکند بررسی میکند تحلیل میکند میشه خروجی شخصیت شما پس ما داده‌ها و به اطلاعات شیطان امیر از انتها به ابتدا آمد فرمود شیطان کاری که می‌کند این شیطان سفتان اقول رو میگیرند قوی تحقل رو میگیرند بعد نگاه می‌کنید می‌بینید مثلاً نه نه نه. کو این صحنه ها رو دیدید؟ نمیخوام اصلا ابدا هم قصد توهینی نداری، اما واقعیت بیان دیگه. مثلا فرض بفهمید نمی دونم، میبینید نمیدارم این جماعتی که جمع شدند اند، اینا چندین هزار نفر جمع شدن از سراسر این کشور اومدن اینجا که این مراسم گاف‌بازی رو ببینن. این مراسم گاف‌بازی رو ببینن که بعدی درها رو باز کنن این ها بیان تو مردم حمله کنن. دیدی تو کوچه‌های بعضی از شهرها اسم می ببرم انتهای مراسم گاو و ویل کردن تو مردم رو دیدی چگونه بلند میکنه گاوه میکو به زمین بعد مردم میدوند بعد حیجان دارن بعد میخندند بعد این رو پخش میکنند تو دنیا بعد این رو اخبارش رو مینویسند سایت های ویجش و شبکه های ویجش این رو مستقیم پخش میکنن چه اتفاقی میفته که عده جمع میشن یا مسابقه فوتبال نگاه میکنن 67 نفر کشته میشه میان بیرون هنوز بربندهش در دست است چه اتفاقی میفته که تو فلان کشور این اتفاق میفته چی میشه؟ چطور این عقل تعتیلش میکنه؟ فرمود استراغن و, و دخولن فی ایونکم این اطباع شیطان دخول در عیون شما دارن یعنی تصرف میکنن رو چی؟ روی دیدنی ها و اطلاعات و ورودی هاتون رو حالا چیزهایی میبینید به شما میدن؟ همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم تکرار میکنم جای تکرار است اینجا ببینید اون چه در ذهن ما هست تصورات ماست بله تصووراتمون رو ما بچشک من می منظم میکنیم به نتایج میرسیم میدونید تصور از تصویر میآید تصویرها که میبینید تصور میسازد دیدها که داریم دیدگاه می سازد نظرها که داریم نظرگاه می سازد برای ما مگه میشه شما چیزی رو ببینید و در وجود شما نمونه و تحلیل نداشته باشه مگر میشه شما چیزی رو بشنوید بیاید و از اون بر برود این حرفه که میگن آقا از این در میاد از اون دروازه میره نه امکان نداره شما چیزی رو بشنوید و در وجود شما اثر نگذاره کم یا زیاد هر فی في عيونكم اینها تاثیرشون رو در چشم میگذارن و فی صنفی کم و اینها میدمن تو گوشاتون این شنیدنها شنیدنها شنیدنها شنیدنها شب ببینید خب تو این سالها مثلا براخره خیلیاتون بودید این طرف اون طرف دنیا زندگی کردن ایزان میدونم هستن در بینمون این پیچه رادیو رو باز میکردید، این کانال رو میزدید در یه برههی حالا شکلش مقداری فرق کرده باز همش می دیدید سه تا واجهه اینا کنار هم میاده که تروریست میاد در کنارش اسلام میاد نمیدانم اگر چی میاد در کنارش اسلام میاد یعنی این هی کلمات رو به خورد جامعه دادن دادن دادن تو قرب که ترکیبی و هیتی از اسلام درست کنن که خشونت و قهر رو نمیدانم تروریست رو نمیدونم تزیه حقوق فلان رو همش دیدید دید این رو دار میگن نف فنفی ماکن هی دمیدن هی دمیدن تا کار خودشون رو بکنن تا خروجی شد درست کنند. تا عقل رو از تحلیل به زیر بیاورند. عمومیت داره من تو تمام حوضه ها دارم از میکنم. تو حوزه اخلاق هست. تو حوزه اقتصاد هست. تو سیاست هست. این دامه ها است. هست. نکم نکن من بین ایدی و من خلف کن و ان ایمان و ان شمائل که اون روز توضیح دادم چهار سوی شیطان. و نفسن فی اسماع بعد، وقتی که این کار انجام میشه وقتی اطبای شیطان تصرف در عقل میکنن تصرف در داده ها و اطلاعات و ورودی ها چشم و گوش میکنن فجعلک و نبله بعد دیگه شما را هدف چی قرار میدن؟ مرما یعنی سیبل یعنی هدف شما نبل یعنی تیر دیگه شما به تیرهای زهراگین زده شدید و موت اقدمه و دیگه شما زیر پای شیطان له میشوید و مخزا یده شما اون جای گرفتنی می که دست شیطان گرفت است یعنی می تو دست شیطان در مشت شیطان دیگه بیخ این گریبان رو گرفته است. و کاملا همان می شود که انما سلطانهو الالذین ی تولونه می کشد و میبرد هر جا که خاطر خواهست. گفتیم و تمام شد این بخش این قسمت اما من استدعا می کنم از خانم ها هست خدمت شما حداقل این جزواتی که دوستان هست اگر نهش البلاغه نیست که مسلم در مناظرتون هست برید بزرگ باران اینها رو دو بار سه بار ده بار بخونید اینها رو خیلی لازم داریم خیلی لازم داریم ما این مطالب تکاندهنده و بنیادی امیرالمومنین رو امام در لابلای این مطالب یک مرتبه یک نوای به نوعی آموزنده و موعزواری رو هم متفهم میکنه اینها بر... برهانی است. اما یه مرتبه تو حال هوا یه و خطابه می ره امیرون ممنی فهتا برو به اعتبار رون رو گفتیم گفتیم آبر از اینجا به اونجا می اعتبار ببینید این ها رو حالا بید تو زندگی خودتون پیاده کنید ببینید این مشکلاتی که این خانماده را متلاشی کرد حالا خودتون مراقب باشید فمود فعتبرو به ما اصابل و امم المستکبرین من قبل کن من الله و سولاتهی و وقائهی و مثلاته آیا واقعا این که رفتند و این گونه در دام شیطان فرو رفتند اینا به کامشون رسیدن؟ آیا این ها به پایان درستی رسیدن؟ این سنت خداوند نیست؟ سنت خداوند نیست که کجی نتیجه موفقیت و کامیابی بدهد قد افلهن مؤمنون قانون الهینه که فلا از طریق ایمان تأمین میشه نه از طریق کجروی، نه از طریق فجور، نه از طریق کفر، نه از طریق الهاد این سنت و قانون خداوند در این وجود است امیر فرمود اعتبار بگیرید به ما اصاب الامم المستکبرین به اونچه در سرنوشت های ها و جماعت ها و مردم مستکبر و شیطان زده دیدید من قبل کن قبل از خودتون چشمتون رو باز کنید ببینید من بأس الله و سولاته که چگونه بأس و قهر الهی بر این ها اومد سولات حمله ها و حجمه ها چگونه خداوند بر ایشان فرستاد اوامل حمله و عقوبت خودش رو و وقائه و مصولاته و چگونه وقایع الهی بر این ها فرود آمد کلمه وقایع جمع واقعه در کلام عرب به جنگ ها حروب به صحنه‌های حساس واقعه گفته می شود لذا شما به قیامت هم واقعه می گویید اذا وقعت الواقعه یعنی اون صحنه‌های مهیب، محیب مثلات مثلح یعنی عقوبت ها چگونه خداوند وقایع مهیب و, و عقوبت ها را بر این مستکبرین حاکم کرد خب این دیگه لا بدای آیات قرآن سرنوشت پیشینیان میبینیم دیگه از اون دل دریا بگیرید جماعتی را که غرق ناهم جماعتی که هر سف فیاد نذرسلنا هم ریحا سرسرا به وقتی خدمت دوستان عرض کردم عجیب است امام فرمودن کاری نکنید که نعمت‌های خدا چی باشه؟ ضد شما باشد خداوند هر گروه و جماعتی رو که خواست نابود کنه تو دنیا با چی نابودشون کرد؟ با نعمت‌های خودش. یا با آب جماعتی را از میان برد. یا با باد جماعتی را از میان برد. عوامل طبیعی. یا باد رو میفرستاد یا زمین می جوشید یا آسمان می‌خروشید. همین ها یعنی همین هایی که نعمتن آب و هوا و آنچه زندگی و نشانت وجود انسان به آنست تبدیل می شد به چی؟ به عقوبت و عذاب الهی بر مردم عجیب فرمود چشمتون باز کنید ببینید فعتب رو خب حالا اگر اعتبار کردید رفتید دیدید حالا با چهار کنید حالا و تعزو خیلی دیدن ها خیلی مشاهده کردن ها اگر اثر نکنه که فایده نداره و تعز و اتعاز یعنی چی؟ یعنی قبول الوحف یک کاری میگن واعظ غیر متعز این زیاد بود آقا وائز غیر متعزند خودشون میگن داما تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند ترک دنیا به مردم آموزند خیشتن سیم و اندوزند این که نمیشه یان با از غیر متعیز فمود و تعزو حالا این دستاورد هاتون رو چیکار فرو ببرید تو وجودتون روی اینها تأمل کنید بررسی کنید ببینید چه اتفاقی افتاد بالاخره ما داریم می‌بینیم توی این عصر زمانی که ما داریم زندگی می‌کنیم داریم بیان مشاهده می‌کنیم می بینید این دیکتاتورها آن با آن در حال سعود که خداوند جمیع بلاد اسلامی را از شر ظالمان و تاقیان به فضل انایت خودش راهایی و نجات انایت بفرماید انشاءالله خب می‌بینیم داریم مشاهده میکنیم پیش رومون دیگه قدربادرت ها قوی شوقت ها خدایگان ها مشت آهنین ها دیگه بالاخره نمیدانم از شر و غرم اون اینا رو دیدیم مشاهده کردیم، اونها که عرض به خدمت خیر اون صحنه رو همهتون دیدی دنیا دیدن صدها بار دیدن که چطور از پشت تریبون سخنرانی متن سخنرانیشو پَرد کرد مقابل رئیس سازمان ملل پَرد کرد اون بالا از اون طرف هم بعد دیدی که چگونه جنازه رو گذاردن مردم دورش میچرخیدن با نمیدونم تلفن همراهشون عکس میگرفتن تصویر میگرفتن از دیکتاتور لیبی اینا همه رو دیدیم ما زندگی عمر کم خودمون فه به این مستکبرین و متکبرین رو در عج و مراتب به پایین ترش فعه به به ما انصابال اون من قبلكم. من قبل کن من ببحص الله و صولاته و وقامائهی و مصنااته و تعضوانه اینا باید اثر کنه و تعضو به مفاوی خود هم الله اکبر ابرت بگیرید به این برخاک افتادن گونه های اینها ببینید چطور جنازه های اینها رو زمینه ببینید چگونه زمین گیر شدند و مسار جنوبه هم چگونه پهلوهای اینها برخاک قرار گرفته است، ببینین گورشون کجاست، هست کجاست، نشانشون کجاست. خب فعتب رو ابرت بگیرید حالا از ابرت چه بگیرید؟ و تعزو پند بگیرید حالا بعد از اینکه اتعاز کردید حالا با چکار کنیم و تعزو حالا وس تعیزو بالله پس چه بکنیم حالا در پناه لطف حق باید گریخت کو هزاران لطف بر ارواح هیچ چاره ای نداریم دیروز خدمت دوستان گفتم اولین گامی که در تقابل با شیطان ذات باری تعالی مطرح می کند قل اعوذ استعاذ است اعازه است استعاز رفتن در پناه خدا اما با همون معناهی دیروز نه با لفظ و کلمه اعوذ و در لفظ نه استعازه فکری استعازه قلبی استعازه قولی استعازه عملی وقتی که تمام اینها شد درست میشه فرمود امام وستعیذو بله پس برید با این اعتبار و اتعاز و استعازه بارتون رو ببندید وستعیدو بالله من لواقه الکه بره برید استعازه کنید به خداوند من لواقه الکه لواقه جمع لاقه باز دیروز هم در عبارت بود لقاه یعنی تولید تولید و تولد فرمود خودتون رو ببرید در پناه خداوند از عواملی که ایجاد چه می کند؟ کبر می کند از چیزهایی که تولید کبر میکنه تو وجودتون من لوانغحل کبر. کما و هم من توارق ده چقدر زیبا امام عینیت میده. آش شما از خیلی چیزها می ترسید و مراقبید به خدا پناه می برید خودتون رو ایمنی بخشی میکنید کار میکنید روش من جمله من توارق ده توارق جمع تارق طرق در لغت به معنای های کوبیدن شکل سادهش هز میکنم. این کوبه های در دیگه حالا وقتی که قدیم هنوز به شکل باستانی در خیلی از محلای سوان هست، این دربای چوبی قدیمی کوبه داشت. داخل پرانتز عرض میکنم. و جالب این بود که این کوبه ها هم دو تا کوبه بود. یه طرف در یه بزرگتر بود، یه طرفش یه کوچکتر بود. وقتی یه مردی میومد در خونه در میزد، بزرگه رو میزد. زن خانه می اهل خانه می دانستن. اون خانم پشت در نمی اومد شوهر پشت در می اومد وقتی یه زنی می در به خونه کوبه کچک رو میزد، بعد اهل خانه می زن پشت دره میومد در رو زن باز می کرد ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا چگونه عمل می و چشم دل باز کن که جان بینی؟ آن چه نادیده در کوچه خیامان های بینی توجه داری؟ ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا حالا چون اینجا نشستیم میگیم اسفان در ایلا بگیم مشهد تهران فرقی نمی سراسر کره ای زمین حتی تو کشور خودمون متأسفانه این حالت رو میبینیم به این کوبه ها مترقه میگویند مترقه یعنی عامل ترق یعنی عامل چی؟ کوبیدن به حوادثی که پیش میاد و کوبندگی داره. تارق گفته میشه و سماه و تارق و سماه و تارق زلزله های مهیب تارق است سیل های سنگین تارق است تحولات جنبیت کنده تارق است درست؟ حالا امیرالمومن فهمد کم از تعیزون هم انتوارغت در همینطور که از این حوادث دلنگرانید به خدا پناه میبرید خدای بلاد ما رو از زلزله از سیل از بلایان طبیعی حفظ کن چنیو و چنان میکنید اقدام میکنید بابا زلزله کبر از زلزله هفت ریشتری هشت ریشتری خیلی ریشتر مالتری داره ریشتر کبر هفتاد ریشتر هست زلزله کبر مهمتره سیلی که می آید با کبر و میبرد. از سیل بیرونی خیلی بنیان فکندتره چرا فکر اون سیل رو نمی کنید چرا فکر اون زلزله رو نمی کنید چرا فکر زلزله ی عجب نیستید حسد نیستید کبر نیستید امیر المامنین می طور که به اینها فکر می کنید به اون فکر کنید کما تسته ایزون هم انتبار فلو رخصن نوح فلکبر لاحد من عباده لرخس فيه له خاصه انبیاءه و اولیاء خیلی لطیف و زیبا ما میفرماند فلو رخصن نوح فلکبر لاحد من عباده آیا می شود که خداوند استثنایی به اول آقایان در علم اصول آیا عمومات و اطلاقات کبر تخصیص و تخصیصی داره تقلیدی داره چقدر زیبا ما میفرمایند اگر خدا بنا داشت ترخیص بده یعنی اجازه بده که یک انسانی کبر داشته باشه اگر خداوند اجازه میداد در کبر برای کسی از بندگانش یقینا چه کسی سزاوارتر بود برای تکبر انبیاء الهی لرحت سفیهل خاصه انبیاء و اولیاء حق مسلم بود که پیامبر اسلام متکبر باشد علی ابن ابی طالب متکبر باشد بل سبحانه کهنه سبحان او متکابر اما خداوند به بندگان شایسته خودش که داشته ها و دارایی های عجیب دارند و متصل به فضل الهی کبر و نپسندید از اینها تکا رو رو رفت و رضی اليهم توازو چی رو به اینها آموزش داد و از اینها خواست توازو، توازو، رضی اليهم توازو بگم این دو جمله رو لذت ببرید ازیزان خدا به این بندگان بلندش به این بندگان بزرگش به اینهایی که خدای صبحان رفعت به اینها داده است به اینها که رسیدن بون مقامات آلی و بلند ذات باری تعالی موظفشون کرد که چه بکنن که فعلن سقو بلعرض خدودهم راهکارهای توازع رو دارد امام می فرمن فعلن سقو بله عرض خدود انبیا و اولیا و بزرگانش رو موظف کرد و امرشون کرد و آموزششون داد که اینها خدودشون خد گونه هاشون رو انفشون رو به خاک بمالند اینها رو موظف کرد که سرهاشون رو به خاک بگذارند تعفیر کنند عجیبه ارسقو به لرز خدوده هم و افرو فترابه وجوه هم تعفیر یعنی خاک کردن این ها به خاک ممانند سونت هاشون رو در پیشگاه هزت باری تالا همیشه گفتیم خدمت دوستان هیچ حالتی برای ما در شکستن قرور رو که به مانند سجده اثر نداره یعنی جایی که شما خاک را که پسترین است، میایید به خودتون رو بر روی خاک میگذارید شریفترین عضو رو پیشانی و صورت رو به خاک میمالیم و به نوع اون نهایت خضوع رو نشان میدیم یه وقتی من گفتم خدمت دوستان به ذهنم اومد حیف نگم این رو دخت بفرمایید اینم باز به با قول خودمون بین حلاله این داخل پرانتز یه وقتی در یکی از شهرهای استان و خراسان قوچان 120 کیلومتری مشهد یه خانم معلمی متاسفانه مورد تعرض قرار گرفت کشته شد جنازه تغییر شکل داده شد ماشین از رد کرد قاتل به شنیتر شکل ممکن تجاوز جنسی قتل مسله کردن بدن فرهنگی های خوچان کردن سر کلاس نرفتن یه هفته نشد نیروی انتظامی قاتل رو دستگیر کرد متجاوز رو دستگیر کرد یه جوان گوش پره گردن کشتیگیر 24-5 ساله به سرعت دستگاه غذا اقدام کرد حکم اعدام صادر شد و به اجرا. تمام شب قبل از اعدام صحبت های این جوان شنیدنی بود شب قبل از اعدام عشق می‌ریخت و ناله میزد یه جمله رو زیاد تکرار میکرد ببخشی درس میکنم میگفت خاک بر سر من که در طول 24-5 سال عمر یک بار ولو یک بار این پیشانی رو در پیشگاه خدا رو خاک و زمین نگذاشتم یک بار نگذاشتم چه می کند عزیزان این تواضع در پیشگاه خداوند؟ چگونه میبرد از وجود انسان؟ بسیاری از مساقی فرمود خداوند امر کرد موظف کرد انبیاء خودش رو که اینها فعل به لرز خدوده هم اینها سر و رو خاک بگذارن ببیند ام سلمه ببیند آیشه که نیست در بستر بلنشن رسول خدا کجا رفت از نیمشن؟ بیان ببینن پشت منزل سر رو بر روی خاک نهاده است رحمتون للعالمین داره ناله می زند کربلا تکلی نفسی ترفت این این ابدا خدای لحظه من و پیامبرت رو به خودم و من گذار فانسخو بالعرض و به تراب وجود فپیامبران خودش امر کرد و موظف کرد اینها را که حفظ و اجنحتهم للمؤمنین این مال خدا بود حالا این دومی مال کی مال خدا با مردم متواضع باشن اینها رسیدن به بلندی و اوج اما حفظ جناحه کل من تبع کمن المؤمنین پیامبر جناب علی موظفید برای این مقدار سیاه زانو بزنید در پیشگاه این دلال حبشی متواضعانه برخورد کنید پیامبران خودش رو در اون اوج دستور داد خفز جناه کنن یعنی از بالا بیان پایین خفز و اجنحت هم للمؤمنین و کانو قومن مستضعفین اینا جماعتی نبودن که با استکبار و تکبر زندگی کنن مستضعف نه به معنای زمین خردوی نه مستضعف در قرآن نقطه مقابل چیه؟ قال اللذین استکبرو للذین استکبرو قال اللذین استکبرو مستضعف نقطه مقابل چیه؟ متکبر مستکبر نه اینها جماعتی متواضع، آزاد، سبکبال، از دلها خبر دارند. دل آن کسی بنشین که او از دل خبر دارد. هم دل با مردم، فیهم، منهم، مردمی، معنوس با خلق خداوند. حتی چبر را به پیامبران خیش هم رخصت او نداد بلکه که در پیشگاه خود و خلق نهایت تواضع رو به اینها آموزش داد حالا امام یه جملات عجیب زیبای کاربردی آموزنده ای رو در این جهت مطمئن می که انشاءالله باید ادامه بحث و فردا خدمت و دوستان عزیز خیلی کنیم و مطرح کنیم خداوند دلهامون به نورانیت کلمه و بیش از بیش منور و مزین بفرماید